با بهترین آرزوها برای شما عزیزان دل تازه های بهداشت و سلامت این هفته رو خدمتون عرض میکنم امیدوارم مورد توجهتون قرار بگیره عکس سلفی نشانه بیماری های است. ارتباط سلفی های زیاد و اختلالات روادی سلفی گرفتن این روزها بسیار رایج شده و خیلی مخصوصا جوانان از این کار لذت میبرن اما سلفی گرفتن در روانشناسی میتواند به عنوان یک بیماری نیز تلقی شود شاید تعجب کنید و حتی نگران شوید اما نگران نباشید منظور ما کسانی است که این کار را زیاد انجام میدن نه کسانی که گاه گاهی به علت اینکه کسی نیست که از آنها عکس بگیرد این کار را میکنند طبق گفته انجمن روانشناسی امریکا سلفی گرفتن به مقدار حداقل سه بار در روز بسیار نگران کننده است و میتواند با سلامت روانی فرد مرتبط باشد تحقیقات نشان داده که افرادی که خودشیفته هستند بیشتر تمایل به گرفتن سلفی های سلفی از خود هستند این افراد از آنجایی که نیاز به تشویق و تحسین دارند تمایل دارند که با گرفتن عکس های متعدد و پست کردن آن در شبکه های اجتماعی این نیازشان را برطرف کنند از طرفی با توجه به ذات ریاکارانه های مجازی این تحسین ها بسیار گمراه کننده هستند و حتی سلفی و بیماری های روانی وضعیت روانی فرد را بیشتر در مخاطره میاندازد. شاید تعجب کنید اما کسانی که زیاد از اکس های سلفی استفاده می‌کنند اعتماد به نفس بسیار پایینی دارند. این استراتژی برای این است که مشکلات اعتماد به نفس خود را هرچند به مقدار بسیار کم جبران کنند. اما حقیقت این امر این است که این افراد دقیقا راهکارهای اشتباهی را برای بالا بردن اعتماد به نفسشان انتخاب کردند از جوی که این افراد با عکس های پورتری خود مشکل دارند می با گرفتن سلفی های متعدد اعتماد به نفس خود را بالا ببرند متاسفانه جوانان مخصوصا دختران بیشتر در معرض خطر سلفی های متعدد هستند رواندرمانی جایگزین مسکن ها برای دردهای مزمن مرکز کنترل و پیشگیری بیماری ها در آنمار از پزشکان خواسته که تا های مناسب دیگری را برای تسکین دردهای مزمن ارائه کنند. پژوهشگران مؤسسه پژوهشی گروپ هیلت در سیاتر آمریکا می‌گویند های شناختی رفتاری و تقویت های روانی جایگزین مناسبی برای مسکن‌ها در درمان دردهای مزمن است. در آمریکا نزدیک به 25 میلیون نفر از دردهای مزمن رنج می‌برند و مرکز کنترل و پیشگیری بیماریها به نام CDC اخیرا نسبت به خطر جدی و روبرو رشد احیاد به مسکن‌های مخدر خوش داده است. این مرکز تجویز و مصرف بیرویه داروهای مخدر برای کنترل درد را یک بحران بهداشتی جهانی می داند و میگوید استفاده نامناسب مصمومیت و مرگ ناشی از این داروها به بالاترین میزان خود از زمان ساخته اینها رسیده است. CDC همچنین اپزشکان خاصه است تا های مناسب دیگری را برای تسکین دردهای مزمن ارائه کنند که موسسه پژوهشی گروپ هلت در این زمینه پیش قدم شده است دکتر دانیل چرکن از پژوهشگران مؤسسه میگوید یکی از مهمترین یافته‌های جدیدین است که عوامل روانی نقش بسیار مهمی در دردهای مزمن مخصوصاً کمردرد ایفا می‌کند پژوهشگران این موسسه دو شیوه درمانی متفاوت با تمرکز همزمان بر جس و روان را مورد آزمون قرار دادند. یکی از آنها به درمان شناختی رفتاری موسوم است به گفته دکتر چرکن درمان, ش... درمان شناختی رفتاری به بیمار کمک می کند تا رفتارها و الگوهای روانی را که منجر به تشدید درد می شوند شناسایی و با تغییر آنها به کنترل درد کمک کنند شیوه دیگر ذهن آگاهی یا حضور در لحظه است که با استفاده از یوگا و تمرین های آرامیدگی به اعتلای ظرفیت روانی و تسکین درد کمک می‌کند. نتیجه این مطالعات در جامعه مجله جامعه پزشکی آمریکا منتشر شده است. تازه بعدی در مورد خرما و کشمش، خرما و کشمش هم قند خون را بالا می‌برند. یک متخصص تقضیه می‌گوید با اینکه مصرف خرما، کشمش و توت خوش جایگزین مناسبی برای قند و شکر در افراد مبتلا به دیابت است، ولی این به این معنا نیست که این مواد خوراکی موجب بالا رفتن قند خون نمی شود و یا به هر مقدار قابل مصرف هستند. برای مقایسه تأثیر غذاها بر افزایش قند خون، شاخصی به نام گلیسمی وجود دارد که نشان می دهد غذاهای حاوی کربوهیدرات تا چه اندازه می‌تواند بر میزان قند خون یا بیماری دیابت اصل بگذارند در شاخص گلیسمی اندیس گلیسمی یک غذای استاندارد که معمولا نان سفیده است را صد درصد در نظر میگیرند و بقیه غذای حافی کربوهیدرات را با آن مقایسه میکنند میزان کربوهیدراتها هر غذا نسبت نیز معمولا دو برابر پنجاه گرم در نظر می گرفتند در این مقایسه مواد غذایی حاوی 50 گرم کربوهیدرات به افراد داده می شود و سطح منهنی قند خون را با آن مقایسه می کند مصرف انواع اصل، خورما، توت خشک روتب، انگور نیز برای بیماران مبتلا به دیابه توسعه نمی شود این متقصص به با اشاره به خوراکی‌هایی که متحد... محدودیت مصرف کمتری برای مبتلایان به قند خون یا دیابت دارند میوه‌های از جمله مرکبات، انواع توت‌ها، سیب درختی، آلبالو گیلاس، حبوبات و نانهای حاوی سبوس محدودیت مصرف کمتری برای مبتلایان به قند خون دارند. متخصصان میگویند باید توجه کرد با اینکه مصرف خرما، کشمش و توت خوش جایگزین مناسبی برای قند و شکر برای افراد مبتلا به دیابت است، ولی به این معنا نیست که این مواد خوراکی موجب بالا رفتن قند خون شود و یا به هر مقدار قابل مصرف هستند. این امر در مورد اصل نیز صدق می‌کند. توصیه شود افراد مبتلا به دیابت با یا قند خون بالا، سبزیهای سبزی های خوردن و سالاد را به همراه وعده غذای مصرف کنند، زیرا موجب کاهش قند خون در افراد می‌شود. یک پژوهش در مورد کاهش استرس، کاهش استرس با کمک به دیگران از بین رود طبق یک مطالعه جدید، زمانی که ما به دیگران کمک می کنیم در حقیقت به خودمان کمک کردیم. محققان در مطالعات اخیر خود دریافتند کمک به دوستان، آشنایان و حتی افراد غریبه می‌تواند موجب کاهش استرس روزمره بر احساسات و سلامت روان ما شود. امیلی آنسل سرپرست تیم تحقیق دانشگاه پزشکی دانشگاه ایالت کنتیک آمریکا در این بار گفت تحقیق ما نشان می‌دهد وقتی ما به دیگران کمک می‌کنیم به خودمان کمک می‌کنیم روزهای پرتنش و استرس موجب موجب می‌شود که ما خلق خوی بدی داشته باشیم و از سلامت روانی ضعیفی برخوردار باشیم اما یافته‌های ما نشان می‌دهد که اگر ما کار کوچکی برای دیگران انجام دهیم مثل باز نگه داشتن در برای دیگران در روزهای پرتنش احساس بدی نخواهیم داشت. در این مطالعه، افراد به طور روزانه از طریق تلفن همراه خود احساسات و تجارب زنگیشان را گزارش می دادن. 77 هفت شرکت کننده با رده سنی 18 تا 44 سال در این مطالعه 14 روزه شرکت کردند. از شرکت کنندگان خواسته شده بود تا وقایع سرزای روزانهشان را در تمامی حوزه ها از جمله مالی، تحصیلی، کاری و غیره گزارش دهند. نتایج نشان داد که کمک به دیگران موجب تقویت آرامش روزمره شرکت کنندگان شده بود. تعداد بیشتر کمک به دیگران با سطح بالا، بالاتر هیجانات مثبت روزمره و سلامت روانی بهتر مرتبط است. تنتان به ناز طبیبان نیازمند نباد تندرستی تون پایدار.